به نام خداوند آغاز می کنم که هر چیزی در خیطه اراده اصلی و ابدی او شکل می گیرد. و دیگر سپاس از شما مردمی که به من جرأت بخشیدید شاهنامه را روایت کنم و دیگر سپاس از شما دوستانم که مرا در این اقدام فراوان یاری دادید من این نوار را به پیشگاه همه مردان و زنانی تقدیم می کنم که زندگی خویش را صرف عظمت و سربلندی سرزمین احورای ایران کردند من آرزو می کنم صدای من بتواند گوشه ای از عظمت خفته در بستر عبیات این اثر جافدن را بازگو کند آرزو می کنم ایرانیان بسیاری این روایت را بشنوند و به ویژه آرزو می کنم بیشتر جوانان ایرانی شنونده این روایت باشند روایت من از شاهنامه ممکن است کمی خواب و کاستی های فراوان داشته باشد اما یقین دارم بسیار مؤمنانه و از سر اخلاص به این عمل دست زدم نیک میدانم. پیش از من هزاران کس به هزاران گونه و شیوه شاهنامه را روایت کردند ستایش و سپاس من نثار آنان که راه گشا بودند و اما اگر این نخستین روایت مورد پسند و قبول و استقبال شما قرار گیرد جرأت و امکان روایت های بعدی را خواهم یافت هموطن شما سعید قائم مقامی پایان سومین دهی قرن چهارم در توس خراسان یک ایرانی پاک نهاد چشم بر جهان می گوشند تقدیر چنین میخواهد که این کودک ببالد و بزرگ شود و در سی و پنجمین سال زندگی پر افتخار خیش به نظم اثری آغاز کند که بعدها برای همیه نصدهای پس از او شناسنامه پر افتخار سیاسی و فرهنگی و معنوی ایشان گردن این ایرانی پاکنهاد حکیم ابوالقاسم فردوسی است که در سال 365 هجری قمری نظم شاهنامه را آغاز می کند و در پایان قرن چهارم هجری آن را به اتمام می رساند. انگامی که شاهنامه به پایان میرسد فردوسی هفتاد سال است سی و پنج سال امرخیشا صرف سرودن یکی از شگفتانگیزترین آثار حماسی، هنری، فرهنگی، فلسفی و معنوی جهان کرده است این اثر شگفتانگیز که شاهنامهش اش میخانیم تنها یک اثر حماسی نیست تنها یک اثر شاعرانه شگفتانگیز نیست تنها یک روایت تاریخی نیست تنها بیان سرگذشت یک ملت نیست شاهنامه روایت کم نزیر و خنرمندانه جنبه های فلسفی و معنوی زندگی است و نه انسان سالهای قار و نه انسان سالهای آغازین تاریخ شناخته شده بلکه روایت فیلسوفانه و پیام بر گونه انسان همه زمانها و همه مکانها و چنین است که شاهنامه تا حد یک معجزه معنوی ارزشمند می شود و چنین است که ماندگار و همیشگی می شود و چنین است که روایت مکررش ضرورت و الزام پیدا می کند و شنیدن مکررش همیشه کارساز و رهایی بخش و تسلی دهنده و راهنمایی کننده است. در دوسی شاه نامش را به نام خداوند آغاز می کند. او به خداوند ایمانی تردید ناپذیر دارد اما سخت آگاه است که شناخت خداوند تنها در حیطه احساسات پاک و قلب روشن میسر است وگرنه نه نه دیدگان ما قادر به دیدن اوست و نه عقل محدود ما قادر به درک عظمت کبریای او به نام خداوند جان و خرد که این برترندشه بر نز خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده خداوند خداونده کیبان و گردان سپر فروزنده ی ماخ و ناخید و میکسه نام و نشان و گمان بر است نگارنده برشده گوهر است ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجند دو بیننده را نیابد بدونیز اندیش راه که او برتر از نام و از جایگاه سخن هرچزین گوهران بگذرت نیابد بدون راه جان و خرم خرد گر سخن برگزیند گذیند همان را گزیند که بیند همین ستودن نداند کسورا چو هست میان بندگی را به باید برست خرد را و جان را همی سنجدو در اندیشه سخته کی گنجدو بدین آلت و رأی و جان و روان ستود آفریننده را چون تمند به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شد پرستنده باشی و جوگنده راه به به بفرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود از این پرده برتر سخن گاه نیست به هستیش اندیش راه راه نیست. فردوسی پس از ستایش یسدان پاک به ستایش خیرد چه بر این باور است که خیرد برترین یاده ایزدی به انسان است کنون ای خیرد ماند، ارج خیرد به دین جاگه گفتن خورد بگو تا چه داری بیار از خیرد که گوش نیوشند زود برخورد خرد برتر از هرچه ایزت داد ستایش خرد را به از راه داد خرد افسر شخیاران بود خرد زیور نامداران بود خرد زنده جافدانی شناس خرد مایه زندگانی شناس خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سران از اون شادمانی و از او مردمی عزویت فزونی و عزویت کمی است نخست آفرینش خرد راشنه است نگهبان جان است و آن را سپاس سپاس تو چشم است و گوش و زبان که این سه رسد نیک و بد بیگومن خرد را و جان را که یارد وگر من ستایم که یارد شنود حکیمان چو کس نیست گفتم چه سود از این پس بگو خافری نشت فردوسی آنگاه به مسئله قامز و پیچیده آفرینش میپردازد پردازند ز آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد بدید و بدون شک این توانایی همان انرژی و نیروست که اساس وجود و هستی و کائنات برای مستوار است فردوسی نیز مثل بسیاری از حکمای پیشین جهان را ساخت از ترکیب چهار عنصر اساسی می دانند. یکی آتشی شده تابناک میان باد و آب از بر تیر خاک و مگر امروز این یقین قطعیت نیافته است که همه چیز ساخت از عناصری هستند که در خاک و در هوا و در آب به هم آمیختند و در گرمای آتش و نبود آتش سرما شکلهای گوناگون به خود میگیرند خست که آتش ز جنبش دمید ز گرمیش پس خوشی آمد پدید آن پس ز آرام سردی نمود ز سردی همان باز تعریف و زود چون چار گوهر به جای آمدند ز بحر سپنجی سرای آمدند گوهرها یکندر دردگر ساخته ز هر گونه گردن برافراخته. پدی آمد این تیز رو شگفتی نماینده نو به نو بردوسی آنگاه به چگونگی شکل گیری منظومه ها آسمان ها سیاره ها بانگاه زمین می‌رسد؟ خلک ها یک اندردگر بسته شد به جنبید چون کار پیوسته شد چون در یا و چون کوه و چون دشت و راغ زمین شد به کردار روشنچران امالی پاب ها بردمید، سر رستنی سوگ بالا کشید زمین را بلندی نبود جایگاه یکی مرکزی تیره بود و سلاح. ستاره به سربر شگفتی نبود، به خاکندرون روشنایی فزود همین برشداتش فرود آمد آب همین گشت گرد زمین آفتاد برزمین رویدن فردوسی میگوید یا گیاهان همچون جنبندگان و حیوانات حرکت و نیروی جز بالیدن و رشد کردن ندارن و جنبندگان نیست جز خور و خواب و آرام چیز دیگری نمی شدنسن و از خرد و تعقل و زبان گیا بهرین نبردهند و چنین است که خداوند از آنان مسئولیتی خواستا نیست یاروست با چند گونه درخت به زیگندر آمد سوام شمس برد به بال ندارد جزی میروی نپوید چه پویندگان حرسون وزان پس چه جنبنده آمد همه رستنی زیدخی شده سرش زیر نامد به درخت نگه کرد داید به کار سخت خر و خواب و آرام جوید همین وزن زندگی کام جوید همین نگویا زبان و نجویا خرد زخار و زخاشاک تن پرورد نداند بد و نینک فرجام کار نخواهد از اون بندگی چو دانا توانا بود و دادگر از ایران نکردی چه من حالانی چنین است فرجام کار جهان نداند کسی آشکار نهان آن آفریدهی که خداوند از او مسئولیت و بندگی می خواهد انسان است. او که همچون گیاهان سری فرو افتاده ندارد و همچون پویندگان آریس از خرد و نیست آخرین و کاملترین پدیده خلقت کلید همه رازهای فرو بسته سری مردم ها آمد پدید شد این بندها را سراسر کلید سرش راست بر شد چو سر بلند به گفتار خوب و خردکار بند تذیرنده ی حوش و رأی و خرد را دد و دام فرمان برد زراح خرد بنگریندکی که معنی مردم چه باشد یکی مگر مردمی خیره دانی همی جز این را ندانی نشانی همی تو را از دو دیتی براوردن به چندین میانجی بپروردن لخستین فطرت پسین شمار تویل هیشتن را به بازی مدار شنیدم دمز دانا دگرگونه زین چه دانیم راز جهان آفرین؟ نگه کن سرانجام خود را ببین چه کاری بیاوی بهی می برگذین برنجندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست برنجندرسته ای خرد مند گنج نیابد کسی گنج نامرد رنج چه خواهی که یابی زهر بدرها سراندر نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکونام باشی برای کردگار نگه کن بر این گنبه تیزگرد که در درمان از است و است درد نگشت زمانه به فرسایدش نه این رنج و تیمار بگزایدش نه از جنبش آرام دیرد همین نچون ما تباهی پزیرد همین از اودن فزمین و از اودن شمار بد و نیج نزدیک او آشکاک ردوسی آنگاه از آفرینش آفتاب و ماه سخن میگوید. سپس به مدح و پیامبر و دیگر مقدسینی میپردازد که به با آنها باور و اعتقاد دارد. و سرانجام شرح می دهد که چگونه شد که به خلق حماسی حماسه ها شاهنامه پرداخت. و در همان آغاز به خواننده اثر گرانقدرش یادآوری میکند که مباد داستانها و ماجراهای این کتاب شگفتنگیز را دروغ و افسانه‌ای بدانند و به او توصیه میکند آن حوادث و ماجراها و چیزهایی را که خرت سازگار نیست کنایه اشاره و استعاره از حقایقی بدانند توصیفش بنابر مقتضیات زمان سرودن شاهنامه تنها بدین دین میسر و دلپسند بوده است تو این را دروغ و فسان مدن به یک روش در زمان مدن از او هرچند در خورت باخرد وگر بر ره رمز و تحنامه فردوسی در کنار عظمت فلسفی و معنی خیره کنندش بیان سرگذشت پادشاهان سلسله‌های داستانی پیشدادی و کیانی و سلسله تاریخی ساسانی است و تنها ابیاتی چند در باره سلسله اشکانیان دارند مبنا و مأخذ عمده و اساسی فردوسی در نقل حوادث و ماجراهای شاهنامه شاهنامه ابو منصوری است که به حکم ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی فرمان توس جمعآوری شده بود و به نصر تدوین گردیده بود این فرمان روای پاک نهاد ایرانی که علاقه مند به سرگذشت افتخارآمیز نیاکان ایرانی خود بود دستور داده بود همه روایتها، گفته ها، نوشته ها و اسناد مربوط به پیشینیان را جمع آوری کنند فردوسی خود این اقدام بزرگ ابو منصور را چنین توصیف می کند یکی نامه بود از گهه باستند پراوان به دو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی از او بهری برده هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پجوهنده روزگار نخوست گذشت سخنها همه باز جوست زهر کشوری موبدی سال خرد بیاوردو این نامه را گهت کرد به پرسیدشان از نجاد کیان آن نامداران فرخ گوان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سرآمد به نیکختری بر ایشان همه روز کنداغری بگفتند پیشش یکا یک محل سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید زیشان سپه بود سخن یکی نامبر نامف کرد بون چنان یادگاری شدن در جهان بر برو آفرین است کهان و نهان نخستین کسی که داوطلب به نظم و شعر در آوردن شاهنامه منصوری شد دقیقی شاعر برجسته ایرانی بود او با عشق بسیاری به ایران و پیشینه ایران این کار را آغاز کرد و هزار بیتینی سرود اما از بد حادثه به دست غلامی حیه ماجرایی نچندان خوشایند کشته شد فردوسی خود از دقیقی یاد میکند و به مرگ دلخراش او اشارهی دارد. چو از دفترین داستان خوابسی همی خاند خواننده بر هر کسی جهان دل نخواده بدین داستان همه بخردان و همه راستان جوانی بیامد گشاد زبان سخنگوی و خوشتب و روشن جوان به نظم این نام را گفت من از او شاهمان شد دل انجمن جوانی شاخ خوی بگ یار عبابت همیشه به پیکار بود او تاختن کرد ناگاه مرد به سرمرن حادش یکی تیر تک بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد یکا یک از او وقت برگشته شد به دست یکی بنده بر کشته شد که گشتاس بر جاسب بیتی هزار بگفت و بر او روز روزگار درفت و این نام ناگفته ماند چنان وقت بیدار او خفته ماند خدایا ببخشا گناه برام بیا در هش جاه دوسیانگاه آنگاه می دهد که پس از کشت شدن دقیقی خود مسمم شد تا اندیشه بزرگ او را خود جامعه عمل بپوشاند. اما دونگرانی بزرگ او را سخت آزار میداد. آیا عمرم کفاف می دهد که کاری را که آغاز کردم به سامان برسانم؟ مگر خود رنگم نباشد بسی بباید سپردن به دیگر کسی و دیگر که گنجم وفادار نیست همان رنج را کس خریدار نیست اما گزرگواری و گشاد دستی و حمایت های مادی و معنوی ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی فردوسی را برمی انگیزد که به خلق شاهکار خود شاهنامه آغاز کند بدین نامه چون دست کردم دراز یکی مهتری بود گردن فراز خداوند نام و خداوند تخت دلفروز و خوشیار و پیروز بخت جوان بود و بیدار و روشن خردمند خردپند و از گوهر پخلوان خداوند رای و خداوند شهر سخنگفتن خوب و آوای نه مرا گفت کس من چه همی که جانت سخن برگراید همی به چیزی که باشد مرا دست رست بکوشم میازد نا یا یاورم این همه شاهنامه به قیمت رنج و درد و سختی فراوان فردوسی آفریده شد چرا که دیری نپایید که از بد حادثه فردوسی جوان جوانمرد خود را از دست میدهد و از این پس تنها عشق مفرط او به ایران و پیشینه و آینده و معنویت و تاریخین سرزمین انگیزه ادامه سرودن شاهنامه می شود ایام مهنت و سختی ها که فردوسی سرگرم خلق ابیات این اثر جافدان حماسی بود شبیه بزرگی را بخواب دید و چنین پنداشت که این بزرگ کسی جز سلطان محمود قزنوی نیست پس بران شد که به توصیه ابو منصور حامی پیشین خود که گفته بود این نامه شهریار اگر گفته آید به شاخن سپار اثر متعالی خیش را به نام محمود آغاز کند و در پایان کار آن را به وی پیش سازد. پس چنین سرود به نام من دست کردم دراز به نام شهنشاه گردن فراز و چون این نامه که نامه به پایان رسید آن را با خود از توس به قزنین پای تخت قزنویان بود و به محمود قزنوی پیش کشند اما ان شاه گردن پراز یکی به خاطران که با فردوسی در زمینه باورهای مذهبی اختلاف نظر داشت و دیگر که آن همه ستایش او را از ایرانیان و آن همه سرزنش او را از ترکان و تازیان نپسندیده بود و سرانجام با آن همه ثروت از گشاد دستی بحره چندانی نداشت از دادن انعام و پاداشی در خور به پیر سخنسرا سر بازد آری فردوسی پیر شده بود سی و پنج سال رنجی را تجربه کرد که از انسان قدیس میسازد. سازد تنها چنان رنجی چنین عظمتی را آبیاری می کند. ده سال دیگر نیز سپری می شود در روزگاری که به قول خود او زمان سراسر پر از جنگ بود به جویندگان بر جهان تنگ بود اینک فردوسی هشتاد ساله است او خسته است سال چهارصد و یازده هجری قمند است او در باغ خود در توس خراسان به خواب همیشگی فرو می سای و مرس نخستین این پادشاهی چنین سرود بود برفت و جهان مردری مندزو بود نگر تا کرا نزد او آبرویی. جهان فریبنده را گرد کرد ره سود پیمود و مایه نخرد جهان سر به سر چون است و بس نماند بدونیگ بر هیچ کنیست ینک با درود و عدای احترام به روان ابرمرد تاریخ ایران ابرمرد شعر و حماسه ابرمرد اندیشه و حکمت حكیم ابوالقاسم فردوسی روایت شاهنامه را آغاز می میکنم و جوهنده نامه باستان که از مرز بانم زنبداستان چنین گفت کاین تخت و کلا کیومرس آورد کو بود شاه کیومرس شد بر جهان خدا. نخستین به کوهندرون ساخت جا سر تخت و بختش ز زکو پلنگی پوشید خود با گروه از او اندرامد همین پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش بگی که درون سازی شاخ بود به خوبی چه خورشید برگاه بود در دوردست محالود تاریخ شاخه ای از نجاد نیرومند آریایی را میبینیم که به سرزمین احورای ایران کوچ کردند گروهی از این سرزمین گذاشتند و گروهی بر پهنه ایران زمین مندگار شدند اینها نخستین ایرانیان هستند که بنیاد کشوری را میگذارند که از آن پس بر نخستین صفحی تاریخ بشری با احترام و ستایش ویجه نامش ثبت می شود و همراه با ملری نظیر ملتهای مصر و هند آغازگران تاریخ تمدن بشری محسوب می گردند. دوسی میگوید بر اساس روایت ها و نامهای باستانی که مرس بزرگ بر این قوم پادشاهی می کند. او بنیاد گزار نهاد پادشاهی است و این هنوز در حالی است که ایرانیان پوست و چرم حیوانات برتن می کنند پلنگی نمی پوشند و در غارها سکونت دارند هنوز کشاورزی آغاز نشده است و هنوز ایرانی ها آتش را نمی کیومرس سی سال پادشاهی می کند و نه تنها انسان ها که جانوران نیز او را به رهبری خیش پذیرفتند و این کیومرس پسری دارد پسر بود را یکی خوب روی خنرمندو همچون پدر نام چوی بودش نام و فرخنده بود که را دل به دو زنده بود زگیتی به دیدار او شاد بود که بس ورشاخه شاخ بنیاد بود به جانش بر از میر گریان بودی زبیم جداییش بریان بودی چنین است آین و رسم جهان پدر را به فرزند باشد توان بر بر این گاه یک روزگار روزنده شد اختر شهر به گیتی نبد هیچکس هیچ کس دشمنش مگر در نهان ریمن احریمنش ریمن احریمن کیست این احریمن بدکار و فریبکار کیست فردوسی در نخستین بخش شاهنامه این جا و انجا از جادوان از احریمنان و از دیوان سخن میگوید. موجوداتی با توانایی های فراوان و گاه فوق بشری و همه بدخواه و بدکار او خود در نخستین ابیات شاهنامه که خاندین هشدار داده بود که چنانچه به موجودی و یا ماجرای و موضوعی در این شاهنامه برخورد کردید که با مبانی عقلی راست در نمی آید بدانید که آنها نهاد نهاتها و نمادها و اشاراتی به هایی هستند که روایتشان در حالی از افسانه و ابهام بیشتر مفهوم می شود پس احریمن و یادیوی می تواند بشری باشد با های خارق العاده اما یار و همراه سیاهی و تاریکی که در قلمرو تباهی و شیطانی قدرت نفس میکشد و در جهت چیرگی تیرگی بر روشنایی و اهریماا بر احورا می میجنگد نخستین اهریمن و دیوی که در شاهنامه به او دیو زاده زادهای است که بر کیومرث و سیامک حسادت میورزد از در فریب در آمده است سپاهی با خود دارد و نخست بموان خدمت گذاری به کیومرس و سیامک نزدیک می شود و چون پیکی آسمانی قصد شوم او را نزد کیومرس و سیامک فاش می کند رو در روی سیامک به جنگ می سند یکی بچه بودش چو گرگ ستورک. دلاور آور شده با سپاه بزرگ. جهان شد براندی بچه سیاه سبخت سیامک هم از بخت شاه، سپه کرد و نزدیک او راه جست. همی تخت و دیهیم که کی شاه جست. همی گفت با هر کسی رازخیش جهان کرد یک سر پرواز فیچ.کیرس زین خود که آگاه بود که او را به درگاه بدخواه بود. یه یک بیامد خوجست سروش به سان پری پلنگین پوش مرو را بگفتین سخن در بدر که دشمن چه سازد همی با سخن چون به گوش سیامک رسید ذکردار بدخواهدی به پلید دل شاه بچه برامد به جوش سپه انجمن کرد و بکشاد گوش بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود انجاهایین چک. حسی رشودش جنگ جنگوی سپه را چ روی اندر آمد به روز سیامک بیامد بهرهن درهن تنا با احرمان یک تن <موسیقی> بسط چنگ باشون دیو سیاه دو تا اندر آورد بالای شاه فکندان تن شاهزاده به خاک به چنگال کردش جگرگاه چاک مچ به دست چنانزش دیب تبه کشت و ماندن جمن بی خدیف. از مرگ فرزند شاه از اندوخ گیتی پروشد سیا فرود آمد از تخت ویل کنن زنان بر سر و دست و بازو کنن پر پرخون و دل سوک بار دجم کرده برخیشتن روزگار سپه سر به سرزار و شدند شدن بران آتش سوک بریان شدن خروشی برآمد زلشگر بزار کشیدند صف در شهریار همه جامها کرده پیروز رنگ دو چشمان پر از خون و رخباد رنگ دد و مرق و نخجیر گشت گروه برفتند ویل کنند سوی کو برفتند با سوگواری واری و در درگاه کشا برخواست کرد قیام آمد از داور کردگار درود آوریدش خوجست سروش از این بیش مخروش و بازار خوش سپه ساز و برکش به فرمان من برآور یکی گرد از آن انجامن از آن بد روی زمین به پرداز و پردخته کن دلزکین شه سر سرسوی آسمان برآورد و خواست بر بدگمان بدان برتری نام یزدان شاه بخند و به پالود مژگان شا و آن پس به کین سیامک شتافت شب و روز آرام و خفتن نیافت آری زمان میگذرد رنج ها رنگ می بازند، درد ها با گذشت زمان آرام می گیرند، زخم ها درمان می شمند. حتی اگر نشان زخم هم مندگار باشد. جای زخم بر دل کیومرس مانده است آتش انتقام فرزند ناکامش سیامک جانش را می سوزانه. بزرگ او را پیغام می دهد که انتقام گیرد و دلش را از رنج کین توهی سازد همه امید کیومرس خوشنگ نوه او بازمانده سیامک است که اینک پس از گذشت سالها و در ایام سال و پیری کیومرس بزرگ شده است و بالیده است و دستور و یا وزیر و مشاور نیای خود و همه امید او برای اجرای دستور خداوند و گرفتن انتقام است. سیامک خجست یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت گران مایی را نام خوشنگ بود تو گفتی همه خوش و فرهن بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مروغا ببر نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نکماشتی ها دلکینه و جنگ را بخواندم گران مایه حوشنگ را همه رفتنی ها به دوباز گفت همه راز ها برگشاد از نخفت که من لشکری کرد خواهم همی خروشی برآورد خواهم همی تو را بود باید همی پیش رو که من رفتنیم تو سالار نو پلنگ انجومن کرد و شیر سدر رندگان گرگ و ببر دلیر سپاه دد و دام و مرغ و پریز سپهکار با کپ و کند آوری پس پشت لشگر کی شاه نبیر به پیشندرون با سپاه بیامد سیاه بیتر ترس و باک همی باسمان برپراکند خاک زهر رای در رندگان چنگ دی، شده سوز بر چشم کیهان خدید و هم درفت دادند هر دو گروه شدند از دد و دان دیوان ستوک بیازید خوشنگ چون شیر چنگ جهان کرد بردیگ نستوک تنگ کشیدش سرا پاگ یک سردو بال سفه بود سر بی همار به پاگند رفتند و بسفورد خار دریده برو چرم و برگشت کار ساده بود دیو و دیوان شکست میخورد. خورد پادشاه سال خورده ای ایران کی این مرس ان پادشاه ایرانی اینک آرام گرفته است کار کرده شد انتقام خون پسر گرفته شد تامت مرانکین را خواستار سرامت کی و مرس را روز کار برفت و جهان مردری مند از او نگر تا کرا نزد او آب رو جهان فریبنده را گرد کرد ره سود پیمود و مایه نخرد جهان سر به سر چون فسان است و بس نماند بد و نیک و هیچ کس تاندار خوشنگ با رعی داد به جای نیا تاج بر سر نهاد بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از خوش مقز و پر از داد دل چو بنشست بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی بر هفت کشور منم پادشاه به هر جای پیروز و فرمان رباد به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ کما کمه آن پس جهان یک سراباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد دومین پادشاه ایران زمین پوشنگ نخستین کسی است که آهن را از سنگ جدا می کند و تیشه و تبر و اره سازد و در زمان اوست که طی ماجرایی شگفتانگیز آتش به وسیله ایرانیان کشف می شود روز شاخ جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه پدید آمد از دور چیزی دراز یا رنگ و تیر تن و تیز تاز دو چشم از بر سر و دو چشم خون ز دود جهان تیگه گن نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ به زور کیانی بیازید دست جهانسوز مار از جهان بجست بر آمد به سنگ گران سنگ خورد همین و همان سنگ بشکست. خود، فروغی پدید آمد از هرم سنگ دل سنگ گشت از فروغ آز رنگ نشد مار کشته ولی کنز راز پدید آمد آتش از اون سنگ باز هران کس که بر سنگ آهن زدی از او پدید آمدید جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین که او را فروغی چنین داد همین آتشانگاه قبل نهاد به گفتا است این ایزدی پرستی باید اگر بخردید شب آمد بر فروخت آتش چکو همان شاه در گرد او با گروه یک جشن کردن شب و باده خرد صده نام آن جشن فرخونده کرد ز خوشنگ مندین سده یادگار. بسی باد چون او دگر شهر که کذا کردن جهان شاد کرد جهانی به نیکی از او یاد کرد بخشید و گسترد و خرد و سپرد برفت و جز از نام نیکی نبود چهل سال با شاد کامی و ناز به داد و دهش بود آن سرفراز بسی رنج آن روزگار به افسون و اندیشه بیشمار چو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری ماند تخت بهی؟ زمانه زمانی ندادش درنگ شدان شاه خوشنگ با رعی و هنگ نپیوست خواهد جهان با تو میر نیز آشکارا نماید چه به سر بود مرورار یکی خوش بند گران مایه تحمورز دیو بند بیامد به تخت پدر برنشست به شاهی کمر برمیان برمبست همه موبدان رازلشگر بخاند به چربی چه مایه سخنها براند چنین گفت که امروز این تخت و گاه مرازی بد و تاج و گرز و کلا جهان از بدیها بشویم برا پسانگه زگیتی کنم گرد پای زهر جای کوتح کنم دست دی که من بود خواهم جهان را خدیف هران چیز در جهان سود مند کنم آشکارا گشایم زبن دومین پادشاه پیشدادی ایران تحمورس به سر را دیواند لقب داده بودند چرا که او یک سر بر دیوان و احریمنان چیره شد برفت من را بفسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست زمان تا زمان زینش برساختی همی گردگی تیش بر تاختی چو دیوان بدیدند کردار او کشیدند گردن سه گفتار او شدندن جمندی بسیار مر که پردخته ماند از او تاچه زر چو تحمور زاگه شد از کارشان برا شفت و بشکست بازارشان به فر جهاندار بست میان به گردن براورد گرز گران همه نر دیوان و افسونگران گران برفتند جادو سپاکی گران دمند سیه دیوشان پیش رو همی بآسمان برکشیدند قول هوا تیره پام و زمین تیره گشت دو دید درو اندرون خیره گشت جهاندار تهمورس پاکتین بیامد کمربستهٔ رزم وکین ز یک سوقه آتش و دود دی ز دیگر دلیران کیهان یک یکا یک بیا راست بادی جنگ نبود جنگشان را پراوان درند از ایشان دو بحر بخصون ببست دگرشان به گرز گران کرد پر در نبردی کوتاه تحمور شکست سختی به دیوان وارد می‌کنند گروهی از آن‌ها کشته می‌شوند و گروه بیشتری به اسارت در می‌آیند بس پادشاه دلآور ایران امان میخواهند و به او وعده می‌دهند که چنانچه ما را هلاکت نکنی به تو و مردم تو خواندن و نوشتن را خواهیم آمخت. تشیدندشان خسته و بسته خار به جن زمان زین خار که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزی از ما کتاید ببر که نامور دادشان زین خار بدان تا نهانی کنم داشکار چه آزادشان شد سر از بند او بجستند ناچار پیوند او نبشتند را بیاموختند دلش را به دانش برف روختند. نبشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی چه تازی و چه پارسی چه سختی چه چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشتند اما آنکه که تعم مرگ و اثارت را به دیوان و احری آن چشنده است خود سر انجام تعم مرگ را میچشن مرگ می آید و تدبیری نیست به سی سال خسرو از این بیشتر چگونه پدید آوریدی کنن برفت و سر آمد روز روزگار همه رنج منده از او یادگار جهانا مپرور چو خواهیده رود چو می به پروریدن چه سو؟ یكی را براری به چرخ بلند سپاریش ناگه به خاک نژب <موسیقی> چهارمین پادشاه ایران و بدون تردید یکی از بزرگترین پادشاهان باستانی ایران جمشید پسر تحمورس است که 700 سال پادشاهی می کند پادشاهی که بنابر روایتهای باستانی بر تمامی جهان آن روزگار بر تمامی بشریت بر تمامی دیوان و جادوان و جانوران فرمان میراند او با فراوان بر تخت پادشاهی ایران تکیه میزند در آغاز همچون همه پادشاهان باستانی پاستار روشنایی است و از این رو از فره و توانایی ایزدی برخوردار است منم شاه با فرهی زدی، همم شهریاری و هم بخردی، را راز بد دست کوتح کنم، روان را سوی روشنی ره کنم در نخستین این پنجاه سال پادشاهی خود دستور می آهن را نرم کنند و سلاح ها و پوشش های جنگی تدارک ببینند در پنجاه سال دیگر پادشاهی او پارچه بافی و جام دوختن و شستن رواج پیدا می کند. و در سبب این پنجاه سال پادشاهی جمشید طبقات چارگانه اجتماعی مردم ایران بنیاد گذاشته می شود نخستین گروه کاتوزیان بودند که در حقیقت روحانیون به شمار می و جایشان در معابد کوهستانی و کارشان نیایش خداوند بود. گروهی که کاتوزیان خانیاش، به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جاگه کرد کو، بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان دومین گروه اجتماعی نیساریان یا سربازان و لشگریان بودن صفی بردگرداست. دست بنشاندند. همی نام نیساریان خواندند کجا شیر مردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند از ایشان بود تخت شاهی به جال و از ایشان بود نام مردی به پای و سبومین گروه نسودی ها یا کشاورزان بودند نسودی سه دیگر گروه راشناست و بر کس از ایشان سپاس به و ورزند و خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشنفند ز فرمان سرازاده و جند پوش ز آواز بیغاره آسوده گوش آزاد و آباد گیتی به روی بر از داور و گفتگوی چه گفتن سخنگوی آزاد مرد که آزاده را کاهلی بنده کرد و چهارمین گروه صنعتگران بودند چهارم که خانند احنو خشی همان دست ورزان باسرکشی کجا کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه پرندیشه بود بدینند در اون سال پنجاه نیز بخورد و ببخشی بسیار چی از این هر یکی را یکی پاگاه سزاوار بگزید و به مود را که تا هر کس اندازه خیش را ببیند بداند کم و بیش را آنگاه جمشید به دیوان دستور میدهد که خاک و آب را به هم آمیزد و قصرها و کاخها و گرما ها سازند جمشید نخستین است. که گوهرهای گرانبه ها را از سنگهای خارا جدا می سازد و زیور جامعه ها قرار میدهد. دهد خارا گوهر جوست یک روز کار. همین کرد از او روشنی خواستار و هموست که عطرهای گوناگون را و خوشبو کننده چون مشک و عود و انبر و گلاب را می و می شناسانند. دگر بوی های خوشاورد باز که دارند مردم به بویش نیاز جمشید پنجاه سال را نیز صرف گسترش دانش پزشکی و داروسازی و درمان مردم میکند پزشکی و درمان هر درد مند در تندرستی و راه گزند همه راست ها کرد نيازاشگار جهان را نیامد چنون خاستان با آخرین پنجاه سال از 300 سال نخست پادشاهی خود را صرف گشتن جهان می کند گذر کرد زان پس به کشتی براب ز کشور به کشور برامد شتاب. چنین سال پنجه به برزید نیز ندید از خنر برخرت بست چید آنگاه جمشید در اوج اقتدار و عظمت دستور می دهد که برای او تخت شیفتنگیزی بسازند تختی که با گرانبهاترین سنگ سنگهای قیمتی تزین شده بود بر آن تخت می نشیند و از دیوان می خواهد او را به فضا ببرد امروز پاری از دانشمندان باستان شناس بر این اعتقاد پای می فشارند که کره زمین بارها مورد بازدید سرنشینان خوشمند سایر کرات قرار گرفته است و حتی این میهمانان خوشمند توانا که از منظومه ها و کرات دیگر به زمین آمدند گاه با زمینیان آمیختند و پاری از پهلوانان استوریی حاصل این آمیزش هستند و دیگران که این فضانوردان در زمان ملاقات زمین با پاری از تمدنهای باستانی و یا پادشاهان و آنها تماس کردند و حتی آنها را با صفائن خود به فضا بردند و برای اثبات ادعای خود پارهای از مزامین کتب مذهبی و باستانی را شاهد میآورند که در آن پادشاهی و یا پیامبری از سفر خود و عروج خود گزارش‌هایی داده است و تصویر زمین را از فواصل دور برای قوم خود تشریح کرده است آیا گزارش فردوسی نیز از سفر فضای جمشید خود جای تعمق و تفکر بیشتر ندارد به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه به دو گوهر اندر نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر شاه فرمانروا جهان انجمان شد بر تخت اوی فرو ماند از فرره بخت اوی به جمشید بر گوهرفشاندند مران روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فرودین براسود از رنج تن دلزکین به نوروز روز نو شاه گیتی فروز بران تخت بنشه فیروز روز بزرگان به شادی بیاراستند به رود و رامشگران خواستند چنین جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار اما حقیقت دهشتناکی در بطن تاریخ وجود دارد که عدم شناخت و درک آن بزرگانی را به تیر روزی نشانده است و نام ملتهایی را از صفات تاریخ زدوده است آن حقیقت تاریخی این است هر عظمتی قرور می آفریند و قرور عظمتها را به و نیستی می کشاند. دمشید پادشاه مقتدر ایران این حقیقت را در نیافت و تسلیم قرور خود شد منی کرد آن شاهی از شناس. ز از بپیچید به و شد ناس پاس گران مایگان را زلشگر بخواند چه مایه سخن پیش ایشان برند چنین گفت با سال خورده مهاند جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان است من آمد با دید. چون من نامبر تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من راستم چنان گشت که من خواستم خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است بزرگی و دیهیم و شاهی مراست که که جز من کسی پادشاست به دارو و درمان جهان گشت راست که بیماری و مرد کسرانک نکاست جز از من که برداشت مرد است کسی و بر زمین شاه فاشد بسید شما راز من پوش و جان در است، به من نگرود هر کهی من است گرید اون که دانید من تردمین. مره خاند باید جهان آفرین؟ همه مو بدان صرف کند نگون چرا کس نیار است گفتن نچون تو این گفته شد فر یزدان از اوی. گسست و جهان شد پر از گفته کوک هران کس درگاه برگاشت روی نمانده به پیشش یکی نام جوی سه و بیست سال از در بارگاه پرا گشتند یک سرسپا منی چون به پیوست با کردگار شکستند در آورد و برگشت کار گفتن سخنگوی بافر و خوش چه و شوی بندگی را بکوش به یزدان هران کس که شد ناس پاس، به دلشندر آید زهر سو حراس، به جمشید بر تیرگون گشت روز همی کاست زوب فرگیتی فروز از او پاکی از دانچو شد خشمناک به دانستو شد با ترس و باک که آزرده شد پاکی از دان به دم درد درمان ندیدی رو روی همی راند جمشید خون در کنار همی کرد پوزش برای کردگار همی کاست زو فرههی زدی برآورده بر وی شکوه پدید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 جرعت و امکان روایت های بعدی را خواهم یافت هموطن شما سعید قائم مقامی پایان سبومین دهی قرن چهارم در توس خراسان یک ایرانی پاک نهاد چشم بر جهان می گوشاید. تقدیر چنین می‌خواهد که این کودک ببالد و بزرگ شود و در سیا و پنجمین و سال زندگی پر افتخار خیش به نظم اثری آغاز کند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 آن را به اتمام میرساند هنگامی که شاهنامه به پایان میرسد فردوسی هفتاد ساله است سی پنج سال خیشا صرف سرودن یکی از شگفتانگیزترین آثار حماسی، هنری، فرهنگی، فلسفی و معنوی جهان کرده است این اثر شگفتانگیز که شاهنامه اش میخانیم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 الزام پیدا می‌کند و شنیدن مکررش همیشه کارساز و رهایی بخش و تسلی دهنده و راهنمایی کننده است. فردوسی شاهنامه را به نام خداوند آغاز می‌کند. او به خداوند ایمانی تردید ناپذیر دارد.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 به نام خداوند جان و خرد که از این بر ترندیشه خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی روزیده رحنمان خداوند کیبان و گردان سپر فروزنده ماه و ناهید و میر نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجند و بیننده را نیابد بدونیز اندیش راه که او برتر از نام و از جایگاه سخن هرچزین گوخران بگذرد نیابد بدون راه جان و خرند خرد گر سخن برگزیند همین همان را گزیند که بیند همین ستودن نداند کسو را چو هست میان بندگی را به باید بست خرد را و جان را همی سنجدو در اندیشه سخته کهی گنجدو بدین عالت آلت و رأی و جان و روان ستود آفریننده را چون توان به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی پرستنده باشی و جوگند راه به جرفی بفرمانش کردن نگاه طبانا بود هر دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود از این پرده بر سخن گاه نیست به هستیش اندیشه راه راه نیست. فردوسی پس از ستایش یسدان پاک به ستایش خرد میپردازد. چه بر این باور است که خرد برترین داده ایزدی به انسان است کنون ای خرد مند ارج خرد به گه جاگه در خورد بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشند زود برخورد خرد برتر از هرچه ایزت داد ستایش خرد را به از داد خرد افسر شهریاران بود خرد زیور نامداران بود خرد زندگی جافدانی شناس خرد مایه زندگانی شناس خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سران از او شادمانی و از او مردمی یت فزونی، وزویت کمی است نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جان است و آن را سپاس سپاس تو چشم است و گوش و زبان که از این سه رسد نیک باد بیگمان. خرد را و جان را که ستو وگر من ستایم که یارت شنود حکیمان چو کس نیست گفتم چه سود از این پس بگوی کافری نشته آنگاه به مسئله قامز و پیچیده آفرینش میپردازد. ز آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد بدید و بدون شک این توانایی همان انرژی و نیروست که اساس وجود و هستی و کائنات آن استوار است فردوسی نیز مثل بسیاری از حکمای پیشین جهان را ساخت از ترکیب چهار انصر اساسی می دانند. یکی آتشی برشده تابناک میان باد و آب از بر تیر خواب.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 ز آرام سردی نمود ز سردی همان باز تعریف فزود. چون چار گوهر به جای آمدند ز بحر سپنجی سرای آمدند گوهرها یکندر دگر ساخته ز هر گونه گردن برافراخته. پدی آمدین گنبد تیز رو شگفتی نماینده نور به نو فردوسی آنگاه به چگونگی شکلگیری منزوم ها آسمان ها سیاره ها بانگا زمین می‌رسند، فلک ها یک اندردگر بسته شد به جنبید چون کار پیوسته شد چون در و چون کوه و چون دشت و راغ زمین شد به کردار روشن چرا به بالید ها ها سر رستنی سوگ بالا کشی، زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه ستاره به سربر شگفتی نبود، به خاکندرون روشنایی فزود همی برشد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب او سی میگوید گیاهان همچون جنبندگان و حیوانات حرکت و نیروی جز بالیدن و رشد کردن ندارند. و جنبندگان نیز جز خور و خواب و آرام چیز دیگری و از خرد و تعقل و زبان گوییا بحرای نبردهند. و چنین است که خداوند از آنان مسئولیتی خواستار نیست یا روست با چند گونه درخت به زیگندر آمد سوام شمزه بعد به بارد ندارد جزی میروی نپوید چو پویندگان هر سو وزان پس چو جنبنده آمد پرید همه رستنی زیدخیش شود.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 چو دانا توانا بود و دادگر از ایران نکردی چی منحانونر چنین است فرجام کار جهان نداند کسی آشکار نهان اما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 جز این بگذری مردم ها آمد پدید چون این بندها را سراسر کلید سرش راست بر شد چو سر به بلند به گفتار خوب و خردکار بند تذیرنده یه حوش و رعی و خرد مرو را دد و دام فرمان برند زراح خرد بنگریندکی که معنی مردم چه باشد یکی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 نگه کن سرانجام خود را ببین چه کاری بیابی بهی برگزین برنجن در آری تنت را که خود رنج بردن به دانش سزاست برنجن در از دی گنج نیابد کسی گنج ناورد رنج چه خواهی که یابی زهر بدرها سراندر در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز کار نکنان باشی برای کردگار نگه کن بر این گنبه تیزگرد که در من از و از اویست درد زمانه بفرسایدش نه این رنج و تیمار بگذاردش نه از جنبش آرام گیرد همین نه چون ما تباهی پذیرد از او دن فزومی و شمار بد و نیک نزدیک او آشکار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 و در همان آغاز به خواننده اثر گرانقدرش یادآوری میکند که مبادا داستانها و ماجراهای این کتاب شگفتانگیز را دروغ و افسانه‌ای بدانند و به او توصیه میکند آن حوادث و ماجراها و چیزهایی را که با حقیقت سازگار نیست کنایه اشاره و استعاره از حقایقی بدانند که توصیفش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 سرگذشت افتخارآمیز نیاکان ایرانی خود بود دستور داده بود همه روایت ها، گفته ها، نوشته ها و اسناد مربوط به پیشینیان را جمعآوری کنند. فردوسی خود این اقدام بزرگ ابو منصور را چنین توصیف می‌کند: یکی نامه بود از کههب هاستن فراوان،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 بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخ که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سرآمد به نیک بر ایشان همه روز کنداوری بگفتند پیشش یکا یک سخن سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید زیشان سپه بود سخن یکی نامبر نامف کند بن چنان یادگاری شدن در جهان بروح آفرین است که خان و نحن.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 شد. فردوسی خود از دقیقی یاد می و به مرگ دلخراش او ای دارد. چو از دفترین داستان بسی همی خواند خواننده بر هر کسی جهان دل نخواده بدین داستان همه بخردان و همه راستان جوانی بی آمد گشاد زبان سخنگوی و خوشتب و روشن روان به نزم آرم این نام را گفت من از او شاه من شد دل انجمن جوانی شاخ خوی بد یاد عبابت همیشه به پیکار و او تاختن کرد ناگاه مرگ به سرمرن یکی تیر ته. بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد یکا یک از او بخت برگشته شد به دست یکی بر کشته شد سه آس بر جاسب بیتی هزار بگفت و سرابد بر او روز کار برفتو و این نام ناگفته ما چنان وقت بیدار او خفته ماند خدایا ببخشا گناه برا بیافزای در هر جاه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 جوان بود و بیدار و روشن روان خردفند و از گوهر پهلوان خداوند رای و خداوند شهر سخن گفتن خوب و آوای نرم مرا گفت کس من چایت همی که جانت سخن بر همی به چیزی که باشد مرا دست رست بکوشم نیازد یارم بکاس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 انگیزه ادامه سودن شاخنامه می شمه. در آن ایام مهنت و سختی ها که فردوسی سرگرم خلق ابیات این اثر جافدان حماسی بود شبی بزرگی را بخواد دید و چنین پنداشت که این بزرگ کسی جز سلطان محمود قزنویلی نیست پس بران شد که به توصیه ابو منصور حامی پیشین خود که گفته بود این نامه شهریار اگر گفته آید به شاهان سپار اثر متعالی به نام محمود آغاز کند و در پایان کار آن را به وی پیش کشت آزند. پس چنین سرود بدین دین نام من دست کردم دراز به نام شهنشاه گردن فراز و چون این نامه که شاهنامه به پایان رسید آن را با خود از توس به غزنین پای تخت قزنویان بود و به محمود قزنوی پیش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 او در باغ خود در توس خراسان به خواب همیشگی فرو روند در رسای که او مرس پادشاه ایران چنین سروده بود برفت و جهان مردری از او نگر تا کرا نزد او آب جهان فریبنده را گرد کرد ره سود پیمود و مای نخرد جهان سر به سر چون فسان است و بس نماند بد و نیک بر هیچ کس